اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلاة و على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرخ لسدری و یسر لیامری و حلول اقضة من لسان یفقه قولی مسلمان محترم ام و دقیقه که امروز ما نیاز داریم کوره باید بفهمیم ویه است که ما من یک انسان هدف من زندگی میکنیم یا من یک انسان به هدف انسان هدفمند کیست و به هدف کیست بسیاری کسا هستند که زندگی میکنن احیان از پیششان اشتباه میشه وسائل اهداف فکر میکنن احیان انسان به هدف زندگی میکنن ولی پیش خودش زیاد سردگران انتقاد می می میکنن دیگران ملامت میکنن دیگران میکنی که شما چطور هستین چنان ولی خبر نداره که خود از این انسان که است به هدف است. به هدف زندگی میکنن در درس امروزی ما و شما می بحث میکنیم سریعی که انسان هدفمند کیست و انسان به هدف کیست اینال هر کدام از ما مثالایش هم میگیم و علاماتش هم میگیم و این درست ها برای این نیست که ما فقط درس هم بلکه شما اگر لطف بکنین یک یکی از این نوشته بکنین و باز در آخر بر خود نمره بتین که ما آیا میتونم مطابق این فرمولایی که گفته شد انسان هدفمند هستم و یا به هدف هستم به این خاطر هر کس متوجه چی باشد، متوجه خود باشه و انسان باید انتقاد سر خود بکنه و هر کس باید خودش خود نمره بته. اگر ما مقایسه بکنیم و دیگرها را سرش بحث بکنیم و ببینیم که کی چطور است و سردگاه گپ بزنیم این فایده نمیکنه. سوال اولی که مطرح میکنیم این است که انسان هدفمند کیست؟ انسان هدفمند کیست؟ خب انسان هدفمند کیست؟ به خاطرذکری که ما شما بشناسیم اول میگیم که یک انسان هدفمند کسی است که اول چی کنه؟ اول هدفش را بشناسد بسیاری کسا هستند که گمان میکنند که من هدفمند هستم ولی خودش هدف نمشناسد سرازی بحث خاطر کردیم دوم علامت انسان هدفمند چی دوم علامت انسان هدفمند که ای است که این انسان هدفمند ثروات خود را سروتهای خود را مطابق هدفش مصرف میکند سوم علامت انسان هدفمند چی است سوم علامت انسان هدفمندی است که انسان هدفمند تقسیموقات اوقات تقسیم اوقات و برنامه منظم می داشته باشد تقسیم اوقات و برنامه منظم می داشته باشد. چهارمی علامت از علامات انسان هدفمندی است چارمی علامتش که ارزش ها و اولایت ها را شناخته، مطابق آن برنامه ریزی میکند پنجمی علامت انسان هدفمند چیست؟ وسایل رسیدن به هدف را تشخیص میکند این پنج علامت از علامات انسان های هدفمند است. اینال ما و شما میم سرازی بحث میکنیم سر هر کدام از این. این پنج چیز شد؟ ار پنج ازیر باید ما دقیقا بشناسیم و باز بعد از او فرمول ها را مطابق از دینامی. یک یک مثال میتیم و هر کسی بر خود خودش نمره میتکه آیا ما هدفمند استم و یا به هدف اول هدفش را بشناسد خب من منایز یک مسلمان هدف ما چی هدف من از زندگی چی هست؟ آیا من کارهایی را می کنم که فقط مثل دیگه مخلوقات آره خوردن است نوشیدن هست، شهوت هستی هست؟ بس من چرا انسان هستم؟ بس نباید خواصی که حیوانات دارن با وجود که انسان بعض مشترکاتی با حیوانات دارد بعضی از خواصی مثل حیوانات دارد ولی انسان باید خصوصیت های دیگه دارد بناهن نباید در پالویزی که خوراکم، نوشیدنم، شحوت، جنسی، مسائل دیگه کسی مشابهاتی هست با سایر حیوانات ولی بر خداوند برتری داد من یک انسان من انسان هستم بنا ان انسان خداوند متعال جل جلاله خلیفه خود در روی زمین گفته انسان خداوند متعال جل جلاله شرافت و عزت داده. انسان خداوند متعال جل جلاله اشرف مخلوقات گفته. ما را خداوند متعال جل جلاله وقتی که میگه ما یعنی ما و شما کل ما را، اگر زن هستیم یا مرد هستیم، اگر جوان هستیم یا پیر هستیم، اگر دختر هستیم یا پسر هستیم، ما را خداوند متعال جل جلاله جل خلیفه و جانشین خود در روی زمین تین کرده. آیا ما این خلافت خداوند در روی زمین ادا کردیم؟ پس من مشخصات خاص خدا دارم که نسبت به دیگه مخلوقات من های خدا دارم آیا اینه می خواست انسانی که مدارم و باید داشته باشم من حقیقتا بمی آراسته هستم و باز وقتی که میم در نقطه ببینن مشترکات با حیوانات ولی باز امتیازات انسان داره از امتیازات انسانی باز پیشتر وقتی که میریم باز مسلمان امتیازات و مشخصات دیگه داره که ردبه ازی بلندتر میشه. بینن حیوان پایین است، انسان بالا میشن و مسلمان به عالیترین قمت الجبل ناخیرین نقطه که بلندترین مرتبک است مرتبه انسان مسلمان هست پس ما دمید سه کتگوری در کدامش قرار دارم آره من خودم یک مسلمان حقیقی یک مسلمان متمدن هستم یا نیستم ایناله وقتی ما میتونیم یک مسلمان حقیقی و مسلمان متمدن با فکر باشیم که اول هدف خدا بشنستیم هدف ما چی هست بسیاری کسا رو وقتی که پرسان کنی یکی اهداف بزرگ است. اینه اهداف علیا میگن یکی اهداف کوچک است. اهداف سفلا میگن اهداف اولیا هدفهای بلند است هدف بلندی که کل زندگی یک مسلمان خاطر از او هست او چی هست؟ اهداف اولیای ما بگیم که بدست آوردن بدست آوردن رضایت خدای عز و جل. نخستین هدف ما در زندگی چی اساسی ترین هدف ما در زندگی چی است؟ به رضایت خدای عزواجل است که ما باید 24 ساعت زندگی خدا مطابق قرآن سنت بسازم و همه فکر بکنم که چی میتونم مرا 24 ساعت زندگی مرا زندگی هدف من بسازم زندگی که رضایت خدای عزواجل ما کسب بکنم این یک هدف شد دوم سعادت دنیا و آخرت بنان خداوند بر ما گفته که و ما خلقتل جن و الانس إلا لعبودون ما انس جن خلق نکردیم مگم خاطر عبادت به خاطر اطاعت به خاطر تطبیق احکام خداوند متعال جل جلاله که نتیجه‌اش چی میشن سعادت دنیا میشن و سعادت آخرت میشن آیه ما در جمله انسان های هستم که بتوانم سعادت دنیا و آخرت کسب بکنم من این باز به نقطه های بعدی هستی اهداف سفلا و پایانی کسب اهداف کوچک است که احیان انسان مثلا میخواه که یک هدف داره که ازدواج بکنه هدفش مثلا ازدواج است درس است تعلیم است درس است تعلیم از آوردن مثلا بسیاری چیزا هست ولی این اهداف کوچک است که لکن یک مسلمان حقیقی این اهداف کوچک هم از یاد نمی برن همیشه هم و زی همیشه فکر و ازی مسلمان در چی هست این ای از که اهداف عالی تر است رضایت خدای عز و جل سعادت دنیا و آخرت از کدام تاریخ میتونم میرم و دست میرم؟ بسیاری کسا هستن، زیاد زحمت میکشن. لکن یک کسی میگه من مال داشته باشم، داشته باشم، من سعادت حاصل میکنم. بلاخره خرم مادیدم انسان‌های بولدار از کل لگی که تشویششان زیادتر است، غمشان زیادتر است، کار داریشان زیادتر است، معامله داریشان زیادتر است، شو آرام خوانه میبریشان، رفتن نمیتونن، شیشتن نمیتونن، آزاد کشتن نمیتونن، پس سعادت خودی نشد. یا کسی گفت فلاما موتر داشته باشم سعادت منترین انسان هستم ولی وقتی که دیدم که موتر خرید موترش تکر کرد واسه رفت بندی خانه با سعادت حاصل نکرد یک کسی گفت ما که فلانی معشوقیم ازدواج بکنم خب که معشوقی خود وقتی که ازدواج کرد بعد از ازدواج جنگ و قالمقال و نکته کندن و نکت جارو در کلیه که دیگه زدن بالاخره نتیجه چی شد نتونستن که باز هم سعادت حاصل بکنن سعادت در چی حاصل میشه؟ سعادت در رضایت خدای عزوجل و در قناعت قلبی انسان که وقتی که انسان از زندگی خود اطمینان داشته باشه آرامش برش پیدا شود. نفسش نفس مطمئن باشه. بعضی کسا نفسش امارا به سو هست ما شما در او وفته درس خواندیم. بعضی کسا نفسش لوامه هست و بعضی کسا نفسش نفس مطمئنه هست شیطان چی میگه؟ شیطان میگه سه قسم نفس است یعنی میگه سه قسم نفس مثل سیدان توپ هست توپ امارا به سو نفس امارا به سو رو میگه شود میگه و میره میگه این بچه شم دیده نمیشه روانش میکنم در در دنیا در جای غرقش میکنم نفس لوامک هستم گایی طرف من گای میزنمش باز طرف جال میره دی طرف میگفت بلاخره کسید من همیشه در اما نفس مطمئنه میگه نفسیست که آرامش داره و همیش آرام است و با خاطر آرام زندگی میکنه هر قدر من کوشش میکنم که شوتش کنم شوت کردن هم میتونم خب وقتی که هدف خدا شناختیم نقطه اولا سروت ها را مطابق هدف استعمال کن انسان انسان چی سروت هایی داره با این افتاده می چیدک تشکر ایناله سروت ها را ما تقسیم میکنم سروت ها چیست سروت ها را میبینیم وقت سروت است وقت یک سروت است مال سروت دیگه است وقت سروت است مال سروت است انرژی استعداد سروت است علم سروت است امروز ما میه این وقتی می بینیم که میبینیم وقتی چهار سروتی که ما نام گرفتیم وقت مال انرژی و استعداد و علم خب من یک مسلمان متمدن هستم یا یک مسلمان انسان عقب مانده که هدف من اشناختیم انسان هدفمند من اینمی انرژی های خود، اینمی سروت های به خاطر رسیدن به اهداف احد علیه یا هدف عالی خود مصرف میکنه انسان هدفمند مسلمان متمدن سروت های خوده مطابق امو هدف عالی مصرف میکنه که رضایت خدای عزوجل و و سعادت دنیا و آخرت مصرف بدست بیرن خب ما میبینیم یک سنجش میکنیم سر مردم خود مردم افغانستان آیا ما مردم مردم متمدن هستیم ما مسلمان های جهان مردم متمدن هستیم اگر متمدن میبودیم چرا ما را جهان سوم میگفتن چی مانا جهان سویم؟ جهان سویم که در چانس اول کامیاب نشدی در چانس دوم هم کامیاب نمیشی منتظر چانس سی هستی ایگه راست هست فرمول رای حلش چی هست نهیم که باش ببینیم که آیا ما مردم مردم متمدن هستیم یا نیستیم و ما با انسان های متمدن که یازده دوازده قرن تمدن داشتن و سر دنیا حاکمیت میکردن و گستاولوبون فرانسوی در کتاب خود نوشته میکنه تمدن اسلام و عرب و اعتراف میکنه که این مردم مسلمان تمدن داشتن لیگرید هون که یک خانم آلمانی هست مستشرقی آلمانی هست ای هم در یک کتاب خود نوشته میکنه که شمس العربی تستو تستو, تستو, تستو فلغرب یک کتاب داشت ایک وقت ایک کرده بودم. او هم اعتراف میکنه که مسلمان ها تمدن داشتن مسلمان ها مردم های بسیار عالی بودن که امروز حتی غربی ها تمدن خوده از تمدن اسلامی استفاده کردن آه ما مسلمان ها همون مردم،, مردم متمدن هستیم به این دلیل بگویم به این سند بیرم از کجا ما هستم نیستم اول ما، تعامل ما با قرآن عزیمشان ما چه قسم از قرآن استفاده میکنیم ما قرآن شریف بسیار که انسان‌های خود خوب مسلمان قرار ببتیم فقط در کاغذ کنیم در دیوال خود نصف کنیم ای یا اطل کورسسی یاسی چهار کل آسی فلان سی فلانقرلآن بر زمین نازل شده انسان ها عقی میگن بلی انسان که قرآن رو درک نکردن میگن بلی ایی می هست. قرآن شریف ببریم در دیگه ها کنیم در دیگه سخیجان از یه رز هرکس که دی شد. آیا زیر, زیر دی که هر کس تیر شد میتونه که مسلمان واقعی باشه قرآن ما کفن میکنیم که مردی پدر کلان خود روانش میکنیم در قبرستان توهین میکنیم قرآن بعد پدر کلان خود کفن او خود مردن بر قرآن هم کفن پوش میکنیم قرآن هایت الکرسی جور بکنیم در گردن خود میپردیم و امراضی به تشناب میریم و تمام روز مسابقات لفظ خانی قرآن است ظاهر خانی قرآن است ماز قرآن پوست را برداشتیم او شیره که سابق میفتن که ماز قرآن مغز را برداشتیم و زمانش تیر شد آلم ما که هستیم برای ما شاعرها چی میگم ماز قرآن پوست را برداشتیم مغز را با دیگران بگذاشتیم خای مسلمان های متمدن چی میکردن؟ ora بر ما بگوین. ما ها مسلمان های متمدن ارتباطشان با قرآن مثل ماوتو نبود. فرق میکرد. چی فرق میکرد؟ چی فرق میکرد؟ مسلمان متمدن مسلمان متمدن وقتی که محمد قرآن از ایشون میخوان اصحاب کرام، شاگردای مکتب نبوت کسایی که در صنف پیغمبر درس خوانده بودن و کلشان صد صد نمره گرفته بودن. صد بافرین. ما باید بفهمیم که اگر شاگرده های مکتب نبوت توهین کنیم اگر بگیم شاگرده ها سفر گرفتن در حقیقت توهین استاد است بنا این شاگرده های مکتب نبوت کلشان صد صد گرفته بودن از کجا گرفته بودن این صد ست چرا صد صد گرفته بودن؟ میگه که شاگردای مکتب نبوت اصحاب کرام آل بیت پیغمبر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وقتی که قرآن میخواندن میخوانن و الضحا واللیل اذا سجى والضحا الضحا وقت است والعصر وقت است واللیل وقت است والنهار وقت است والفجر وقت است ای خدای عزوجل ای مردم او مسلمان ها بی جامعه شویم چرا خدای عزوجل قسم زیاد میخوره با وقت وقت وقت وقت وقت وقت چی مادر از ازی خاطر مسلمان ها می گفتن که وقت ثروتی بزرگی است که پیش انسان متمدن بسیار ارزش داره وقت انگلیسی ها میگفتن که تایم از وقت مثل طلاست مسلمان ها میگن نه نه نه نه نه نه وقت مثل طلا نیست قایچی اس میگم تلا چیز بارسال 100 گرم داشم دوز بردمهش اله پیسې دیگه پیدا کردم 200 گرم 500 گرم خرم اما واو جان کسی که بدا و حال کسی که دیروز نماز نخوان دیروز وقت خدا ده تیر کرد دیروز به امرای دوستای غلط گشت که بالاخره و دوست غلطش 24 ساعت پیش سلف فیلم شش تا تلویزیون شش تا رقصایل میکنه خنده سالار سار میکنه لودا سالار سار میکنه ستارهی ستاره, ستاره, ستاره را فساد میکنن باز این انسان بدبخت چی میکنه میگه که در روز قیامت میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا آکاش ما فلان نفر دوست خود نمیگرفتم یا لیتنی کنت تراب کاش که من خاک میبودم یا لیتنی تنیلم اوت کتابیه ای خدا کاش که بر من دفتر اعمالم داده نمی شد یا تنیلم ادری حسابیه ما اغنا اغناعنی مالیه عنی سلطانیه سلطنتم از اسم رفت مال برم غم گشت چون ماله به خاطر نفس اماره به سوم است کرده بودم خدوهو فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ذراع سبعون ذراع فسلوه. چرا؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحذو على طعام المسكين. اين <تصفيق> هالی کسایی که با نفس آمراه بسوي خود عرقت میکنه، این تجی جزای نفس آمراه بسوي عزیز است به نه مسلمان های متمدن قرآن شناس هایی که در مکتب نب و تربیه شده بدن اونا بر وقت بسیار ارزش میدادن که اضاج عجل هم لایست تاخیل اون ساعتم والی تقدیمون وقتی که عجل انسان بر یک دقیقه تأخیر تا و تقدیم نمیشه و انسان فکر ببین که لحظه نباشه که ملک الموت ببینه و بازبد از وقت نداشته باشیم بود که یا رب برم یک پنج دقییرگان وقت بدهگه رب برجیون رب برجیون با بر تو در بین آتش لوتک زده بریم حالا بر وقت دادن نشد این ما مردم افغانستان مردم مسلمان های متمدن هستیم یا عقب مانده سوال جواب مردم عقب مانده هستیم چرا دلیل چرا خاطر ازی که بیارزشتر ارزشترین چیز برای مردم افغانستان چیست نه وقت خود ارزش رو عرضش میتیم نه وقت دیگرها رو ارزش میتیم نکدام کدام برنامه داریم نکدام کدام پروگرام داریم هر کسی که برای ما برنامه ساخت اون دوام که ساخت دول زد اون دو به دول اون دو میرخسیم امریکایی دول زد به دول از اون میرسیم. روسی بر ما جاز زد دانس میکنیم کل ما هیچ شخصیت نیست وقت ارزش نداره کل وقتم بوده چیز والله فلان خان چیو چی کرده بود ختم کرده بود دا ختم چیکار بود علق 4 5 نفر اومدن اونمجه یک کسی یک سپره خان یکی دو خط خان سه خط خان صاحب نان خوردن فخر قران چی تاثیر کرد ایچ ایچ درم از اون چند ختم کردی صاحب شش ختم کردم پنج ختم کردم شخط بتواد دو, دو بچه شو ختم کردم چی قسم ختم کردی خلاص قاریشم خواندم رفت مثلا در سر شانه یک کسی دیگه مونده بودم قرار خورم پیش خاو زدم در معانی قرآن قرآن سر چی تاثیر کرد آیده شخصیتی تو کسیم تاثیر کرد نه هیچ فقط همه قلقیدم که ماه رمضان زدود تیر شد همین زود تیر شد که همین تشنگی و گشنگی و گپا آه خلاص شخصیتیم نه نه نه شخصت اونمو اونمو آلت عادی آجه که از پیسی حرام، از پایسی سود، از پایسی اختلاس، از پایسی دوزی، از پایسی غصب زمین و دیگران، از پیسی داواست دیگران، از پیسی چپاول، هج میرن، مار میرن اجرار میرن. سکبدری های هفتگان ما شوی. که چو تر گشت پلیتر باشد. خریصا گرش به مکه برن، که چو باز گشت هنوز خر باشد. ابو کل کلکین خداواز میکد پش روی خانش خانه خدا ابو جل کل خداواز میکد پش روی خانش خانه خدا چی تاثیر کرد؟ کرد؟ کرد در یمنی چو با منی پیش منی, پیش منی تو بی منی در یمنی اگه در یمن هم هستی با خدا هستی تو دوست خدا هستی اما اگر در پیش خانی خدا هم باشی و به خدا باشی تو به منی به ارزش هست مثل ابو جهل و ابو لهب. خب وقت ما به ارزش بناهن ما عقب مانده هستیم متمدن نیستیم قرآن شناس نیستیم و قرآن عمل نکردیم اگر قرآن همش ناختیم بر وقت ارزش زیاد می دادیم یک مال آیا ما بر مصرف مال خود کدام برنامه مشخص داریم ی الذي کی و بدین الذي یا دوال یا تیم وا خاع تو عامعمل الذي الذي از مالدار که توجه باید تیمما ندارن. اتا عذاب خداوند است بر او فقیره که، خودش پول نداره لکن مردمش تشویق نمیکنه بچی بر برای خدمت رسانی برای یتیمان و مسکینان ولا یحدو علی طعام المسکین برای مسکین مردم در زبان عربی تشویق میگه خود و حظا یعنی تشویق کردن است این حتی مردم میگه تشویق نمیکن از این خاطر ده عذاب خداوند است که تو که پیسه نداشتی ادقل زبان خود داشتی که دوستای متول پول دار تشویق میکردیم که بیا یک دارو لایتام بسازیم به یک تیماک وش خدمت بکنیم دی برای میمسکین ها کمک بکنیم باید بیا این بر که در خواندان میتان مدرسه بسازیم سازه مدر های قرآن بسازیم ادقل اونا رو تشویق می کردی والا یا خود دوالات عال میمسکیین نگه یه انسان بدبخت ای کسی که حدعاالما و فصل که را شما وقتی که یک نفر خودش پول نداره ازی به است که یک نفر را تشویق بکنه به مسکین و یتیم به کمک کردن باید تیم مسکین پس حال او پولدارها و پیستدارهای که امکانات دارن در یک شب سیلک چار لگه مصرف میکنن در یک میمانی خود سی هزار چل هزاری برن چی مصرف میکنن نه خاطر رضایت خدای عز و خاطر نفس امارب سو ما از کس که خدا کم نبیه کس سرت خم نشه سر کی خم نبود سر شیطان ابا و من الکافرین اما انسان با ایمان و شناس است تواضع کند توشمند گزین نه حد شاخ پر میوه سر بر زمین این انسان سر خود زمین به نه ما مال خدا رو چی مصرف میکنیم ما مولخه چی مصرف میکنیم یک پنجا نفر یا صد نفر جوانا بودند یا با با با, با مسلم جوانان قران شناس بودن گفتن والله ما معسل هستیم ما امکانات نداریم چطور کنیم پیسی زیاد نداریم گفتن نه میتونیم که برای یک دار لایتام جور کنیم و این معسلین دار لایتام جور میگن تاجارا نمیدانند تجارای بی فکر هستند از خدا بی خبر هستند اون نمیتونه جور کردن اما معسلین با فکر جور کردن چه قسم جور کردیم گفت والله ما این قسم جور کردیم که ما وقتی که اومدیم مشکل داشتیم در چی گفت ما مشکل داشتیم در در بخاطر فکر کردیم شیش که چی قسم میتونیم ما برای یتیم ها بکنیم برای اداره ایتام جور بکنیم گفت بالاخره دیدیم اداره دو 200 نفر ضرورت داره با چند نفر استاد گفت خیر از ما رو یک ساعت وقت خود میتیم بر اینا استاد میشیم گفت خو خیر از اداره پیسه کجا بکنیم چی میکنیم آسان است یکی از دوستاش گفت ما شما کل ما برای یک وقتی یک محاصل برای ریشکل کردن خود دو صدری مصرف میکنه بین این پیسی ریشکل جام میکنیم کلش میشه صد نفر که دو, دو صدری رو را جام کنه میشه 20000 20000 برای که ما بدن علای تو هم بدهیم اینا 200 نفر تیم کتاب هم کتابچه هم قلم ان فلان خودمون میای 1 ساعت وقت خودمون میتیم براشون درس میتیم یکی دری درس بده یکی پشتو درس بده یکی ریاضی درس بده یکی قرآن کریم درس یکی حساب درس بده یکی هندسه درس بده چهار سال اون تون در چهار سال یتیمارا تاصل به چهار رساندن فرق از بینی انسانی که مال خوده مصرف میکنه و در خزانه خداوند حفظ و فرق از رقاصه و به خاطر انسان‌های ضعیف و بیمان مصرف میکنن و در روز قیامت اینی مالش برش آتش میگرده. انسان خود آمشناس، مسلمان متمدن و فی اموالهم حق کل سائل و المحروم چی مال کم داره لکن در دا مال کم خود حق میتواره سوال کننده و بر مسکینها ها انسان های مسلمان های مانده ای که قرآن نشناختن در قرآن فقط قرآن عظیب شان میگه یا ای پروردگارم اینا قرآن از قرآن هجرت کردن به قرآن عمل نمیکنن قرآن ترک کردن به قرآن کدا به دستور قرآن عمل نمیکنن از این خاطری ای از علامت انسان های بد انرژی و استعداد ما بسیار مردم با استعداد داریم باور بکنید بسیاری از با تون ها که ما رفتیم دیدیم که مسلمان ها و مردم های با ایمان و مسلمان این مسلمان های افغانستان و تاجیکستان و ایمانتقوی ازبکستان و مسلمان های ایران اینا کستن استعداد بسیار عالی و قوی دارن اگر دیگه بسیار ضعیف هستن ولیکن استعداد از اینا بسیار قویزه در کل پوامتونا اول نمره هستن ولی مشکلشان در چیست مشکلشان که انرژی و استعداد خود منفی استعمال میکنه بزرگترین انسان با استعداد خدا در لوده سالار هند سالار کاندید میکنه ای باید ستاره ساینس میشد ستایل ری تکنولوژی میشد ای باید ستاره اخلاق میشد جوانایی رو میبینیم که از همراهان ساست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم داستانم آرزوست جوانی رو میبینیم که سر قواریش سال کنی خوشت مه استعدادش خوشت مه لکن وقتی که حرکت های منفی از زیر سال میکنی دز زدن و پوز زدن رو استعداد خوب خدا به ارزش به فایده مصرف میکنن که بلاخره می استعداد عزی چی میشه باید واسه اینکه فایده برسانه برای از این نقص میرسنن خوب استعداد خود در, در چی مصرف میکنن؟ در محافل لچکی در سخنای زشت در فکای های بیجا در برنامه های بیرزش در ششتن در محافل بیفایده در آرایش کردن و فیشن کردن مثل زنا و خدا آراسته کردن و سین کردن و سرخی کردن بچه هایی که سرخی سفیده بزنن و لفتیرین بزنن از یا چی خواد جور شد؟ شد. یه بحین زن یک طبقه سیومی ایجاد شده از استعداد خود خود اللوده جور کرده که از همراهان سست و دلم گرفت شیری خدا و رستم دستان مارزوست شیری خدا رو بیبی در میدان قوی در فامیل خود بسیار با محبت با اولاد خود بسیار مهربان با مسلمانان بسیار مهربان اشد داؤو علی الكفار رحماء و بینهم تراهم فی سجودهم تراهم فی وجههم تراهم عن سجدن یبتغون فضلا من الله و ردوانه و یا الله و رسوله این ها دیگه سایستن که خدا و پیغمبرش همه انرژی خدا جوانای با ایمان دیدیم چی میکنین؟ فالسه ما این فرشای مسجد دیدیم که ناشش است فوراً آستینای خدا برزدیم گفتیم بهیم که ما این فرشای مسجد دیدیم اولی مسجد خراب است ما رفتیم اولی مسجد کلش گل کاشتیم جوانایی کی هستن؟ جوانایی که اینا برنامه دارن جوانایی هستن که مثلاً پرشم سه. جوانایی که مسجد رنگ میکنن، جوانایی که شب شینی در ماه مبارک رمضان دارن, دارن. جوانایی که میخوان تالیف یه کتاب اسلامی بکنن جوانایی که میخوان سی های اسلامی رو پخش نشون بکنن جوانایی که میخوان کار اسلامی بکنن که اسلام رو برای دنیا برسونن هیچ جوونایی هستن که استعداد خدا در راه درست مصرف میکنن اما متاسفانه اکثریت ما را که میبینیم استعدادش هیچ همین استعداددی برای از وبال است چون مثلا ببینید حدیث شریف واسه که یک نفر یک فکای دروغ میگه تا مردم بخندانم میگه تا کی اید دو دوزخ یک قطع نکارن ای پاک نمیشه. چرا ما فکای دروغی میگیم؟ امین جوان های ما که فکای فکایه میگن اصلا ملاناسودین که هست ای خوجه نسردین هست خوجا نسودین در ترکیه بود. او مردم به بیچاره نمیخونه میون دیگه. مثلا هر که بازی داد آره، ما دا را، همون بازیو میگیریم که پای ازو را قبول میکنین. خوجا نسودین ده انگلیسی له خوجا ترجمه نوشتا میکردن. خوجا نسودین در کتابای انگلیسی. اینه به خاطری که انگلیسی ها که علما را پیش مردم ترویج و تحقیر کنن، دیدن که مردم افغانستان اول علماء خودمو الله میگن. گرفتن انگلیسی ها امی کلمه خوجا رو به ملا تبدیل کردند. و باز پسان گفت امی نسودین شما حذف کنین. یک ملا چطور شد؟ ملا چطور شد؟ ملا چطور شد؟ انسان‌های احمق، انسان‌های انسان انسان‌های غیر متمدن، انسان‌هایی که تحت تأثیر انگلیس رفتن، 24 صد اینمی را جماوری میکنن و بعضی اون سال دیگه در پامتون کابل در لیلیه یک مسیحی آمده بود و یک کتاب نوشته می‌کرد، فقط میگفت از جوان‌ها رو می‌خوام ببین، فکایایی که سر ملا گفتین شما این فکایا رو جمع کنین و بعضی رو می‌بره در غرب چاپ می‌کنه، نشر می‌کنه. ببینین که مردم سر عالمای خود چقدرش خم می‌ذارن. وقتی تکه پاپ جان پاول میموره رئیس جمهور را جمع میکنن میرنده در جنازه از و کل رئیس جمهور باید اشتراک کنن اولش باید رئیس جمهورای کشورای اسلامی باشه اما از علمای ما رو چی است سر ازش خند میزنن و ما مردم ایرانستان اینو میگیم هر کسی که هر چیز گفت توتیوار امتو اگه گفت توتی جان توتی مرگ خلاص هر کس بر ما جان یادات جان بگیم مرگ یادات مرگ بگیم تو شو دوست دشمن نمیگید هر کس که گفت اول صدا کرد توتی جان باز یک جای یک چیز گفت یه فرصت سکی توتی ر بگویم توتی گفت جان گف تو بگیش گفتم توتی گفت مارک گفتم سامر سامر سامر ما خب فرمیدم که احمد ما راه می بازی بده گفتم اول خیما میگم بازی تو بگو گفتم توتی گفت جان گفتم تو میگفت توتی گفت مرک چون توتی به جرات دو سه دشمنو خواست تفتیش کردنه میتونه هر کس که اول گوپور جان میگه هر کس که دوم گوپور مرک میگه ما مردیم افغانستان مرک هر کس کسی در دان موداد گفته میریم دیگه ها ها ما صد دموکراتی ما لاصحاب دموکراسیه سلام صاحب آزادی ها سلام صاحب دخترایتون روون کنین به الله هر چی که گفت ما میگورم از تو تعقیب میگن چرا علتش چی است علتش که ما نتانستیم که انرژی و استعداد خدا به خاطر هدف عالی خود که سعادت دنیا و آخرت و رضایت خدای عزبه جل است به مصرف برسانیم چهارمش علم است علم است بسیاری کسا علم دارن علم اگر در دل زنت یاره شود علم اگر در سر زند ما شود علم که در دل میزند چی است علم در دل است که انسان پش خود فکر میگنه خدایا ما خوندم، من انسان زیب، بیچاره، فقیر، حقیق در بین کل مردم، آجیسترین مردم آمها هستم زیفترین مردم ها ما هستم هستدم، بخش ترین مردم آمهاست میلای ما را به بخشی الهی آفکنی الهی, الهی، توبه کردیم، الهی گناه کردیم، الهی اشتباه کردیم، الهی ما این انسان تواضع می بخشد. خاک باي همه هستم، تواضع کنم. هوشمند گزین نه حد شاخ پر میوه سر بر زمین انسان هایی که درخت هایی که میوه دارن سرشان در زمین است چون میوه ازو دست شخصیت ازو تاثیر کرده سر شخم کرد تو که سرت بالا میده تو چه چنار صفت هستی تو باید قطع شوی و این چنارا قطع بکنن و او را ببرند استک جور بکنن اون میوه نمیتن نه اچ شاخ پر میوہ سر بر زمین امروز आम्ही گردگکای اشتوکارا که قطعه میکنن و دزی میکنن و میبرن باس اوره کل د... چیزای شه حجرات شه حفظ میکنن و دبین یخچالهای مخصوص میموران و بازور میبرن از دیپلا که افساله یا د سالا را مین از کوچه میگیره دوزی میکنن باز باز از اوره قطعه میکنن باز وقتی کی را قطت کرد بازی را میبره برک بزنسمن 80 ساله در اروپا اونجا بر ازون نسل میکنن आम्ही کار یک سایز دان میکنه برادر. امری یک دکتر متخصص میکنه ولی چوری دکتر متخصص استشارات طفلا را دکتر طفلنجی کشم و طفل دج ده پشت خانه افتادن به خاطر از که علم اگر در سر زند ماری شود علم از اون مرگش برای قتل برنامه میسازن بسیاری کساس که علم دارن لكن علم جسر زند ایوازی که مردم به قرآن و به دینداری و به مزید تشویق بگن مردم از دین متنفر میسازن از مسجد متنفر میسازه الفاظ خود کنترل کرده میتونه که هر لفظی که در مقابل یک جوان استعمال کنی در قلب از اون مثل که کت شمشیر زده یوازی که تشویق بکنه اسلام و اسلام او رو انوز متنفر میسازه از اسلام چون خودش علمش در سرش زده ایره غرور داره من هستم تکدار اسلام من هستم عالم من هستم دانشمند من هستم کل چیز میفهمم و دگر او کله گی بش نشم اما الم اگر در دل زند یار میشکم ما باید مسئولیت من نسبت به دیگران بیشتر است دیگران باید بشینم ما باید استاد باشم دیگران باید خواب کنه ما باید بیدار باشم صاد که وظیفش دقیق است 24 ساعت کار میکنه هیچ بلک نمیگیرن قلب که وظیفش بسیار دقیق است 24 ساعت کار میکنن اگر علمای متمدن می داشتیم که 24 ساعت به نفع اسلام کار میکردند باز ما دای بدبختی ها نوبد اکثرا از اول جوهلا که علماء ما زیاتر خوام می زیاتر استراحت طلب هستند زیاتر تشریفاتی هستند به خاطر خدا و پیغمبر خدا سنگ پیغمبر دست فرقش سنگ می از پایش خون می که تا کی دین و دنیا رساندن ولی ما میگیم جانشین پیغمبر هستیم اگر یک انتقاد عادی هم که سر ما کنه وا قیامت بر پا میشه گرب زدن نمی شه چرا علم اگر در دل زنت یاری شود علم اگر در سر زنت ماری شود بسیاری کسایی که یکمه که علمیت حاصل کرد یک دفعه غرورش آسمان میگیره. بس شیطان میگه خلاص, خلاص خلاص خلاص شاگرد من شدی نامت از عالم، کار شیطان میکنی نامت ولی گر ولی اینش لعنت بر ولی ما والی هستم، ما دوست خدا هستم، ما قلبم پاک است، ما شکمم پاک است، فلان هست، فلانیست. باز وقتی که صاحب سوال کنی، از اینکه قلب مردار هیچ کسی دیگری هست. از اینکه اوقیده‌ای هیچ کسی دیگری هست. از اینکه برنامه‌هایش سن که می‌سازه، هیچ کسی دیگری هست. خب، این الان این شد. علامت سوم انسان‌های هدفمند چی است که تقسیم اوقات و برنامه منظم می‌داشته باشند؟ تقسیم اوقات منظم و برنامه منظم می‌داشته باشند. ما خودم رفتم درکی است کشورهای عربی تحصیل می‌کردم. رفتم به تحصیل کردن سمسر اول ما شروع شد شب تا دوازده و یه شب تا یک و یه درس میخاندن. اول نمره نشدن آه خدا پاک خاک دستار من مرا چی بلا زدن فلانی نفر اول نمره شد من پس مانیم، خب اللہ چی کنم چی کنم چی کنم چی کنم کلمه دیوال بزنم نه باید پرسان بکنم باید تحقیق بکنم رفتم پیش یک اول نمره پیش دیگه اول نمره در پوانتوریگ مادرش میخواد از 65 75 کشور جهان اونجا معسل بدم سینشای ما از تایلند از جنوب شرق آسیا است امریکا از اروپا از آسیا عرب ها از کل کشورها دستش ما بدن خب رفتیم از اول نمره ها پرسان کنیم برادر تو چی کمال داری اول هست رفتیم گفتم سلام علیکم و علیکم و سلام بریدو عشر دقائق ده دقیقه می خرم ان اکلیبو که في موضوع قل انت مجنون کفتو دیوانه هستی ده دقیقه برمندی من ده دقیقه برچی برطوبوتم من برنامه دارم ار وقت کس ده دقیقه و بیز دقیقه دادا چی؟ تو محسن هستی وزیر محسن رد بیشت بلند ترس از وزیر که دا تقسیم اوقات منازل باید دقیقتر باشه باش از وزیر که آه خدای پاک درس اول. گفت بخای ممکن عشر دقائق غدا گفت لا یوم الجمع في الساال عاشره ممکن تأتي و اکلمك روز جمع سوات ده بجبه بشه کمع کتدگاب بزنه اما قبل هذا فلا تفضل السلام عليكم مَعَسْسَلَمْ بلا مَتْرُوتِ نبارو پناید به خدا تردت هم نمیکنم روز جمعه ساعت ده بجم مجبور است برم پرسان کنم ای کمال داره که خیز گفت برادر ای که اول نمره عمومی میشه ای تقسیم اوقات که بیری در بالی سر بالی سر چپرکتش منظم برای 24 ساعت خود تقسیم اوقات داره در کدام ساعت کلام مزمونه بخوانم در کدام ساعت کدام مزمونه بخوانم در فلانی فلانی بخوام. پس اگر میخوایی که مسلمان متمدن باشی باید تقسیم اوقات چی داشته باشی 24 ساعت از کجا بگیری تقسیم اوقاته گفتم از کجا بگیرم گفت این که در پوانتون میگیری خود درست است اما اساس برنامه در تقسیم اوقات مطابق سنت رسول خدا باشه ما گفتم چه قسم؟ گفتم درس میخونی؟ گفتم سعی میکنم تا ساعت 12 درس میخوانم. خب صبح چطور تو میکنید؟ خب تا من تا 12 زمین بچکه نماز صبح مجبور دیگه با تلگک و با لغت مرا بیدار کردن. باز باز وقتی من بیدار میشم ان از بخی نماز صبح بخونن از جهانان از خوابی بر چه خوب چطور کنی بالا؟ خب بالاخره سر چاکلی جان بخی، شینجی جان بخی، اناز جان بخی درس کتلغت دادانم در میزنن چرا نمیخیز؟ نماز صبح خدایی داید کنیم این حال سایی چی کنیم؟ گفت که پیغمبر خدا گفت که وقت استراحت کن خیلی اخو محصل هستم مفرید تو مطابق سنت پیغمبر عمل کن چی کنم؟ گفت وقتی که تو ناوقت دوزدونی بجه خواه کنی صبح که میخیزی چشمای خواه پر میخیزی وزو میکنی یک پندقه در تشناب خواهد میبرن بازو کامه در مزدی دیگه الحمدلله حمدلله ح نماز خلاشات غروب در سر جنماز پس خوک چند بچه از خوکیستی افتونیم بچه فکار مسلمان نیست یه مسلماناتو نمیکنن خیلی مسلمان چی میکنن گفت مسلمان وقت خوک میکنن نونیم نیم استراحت کن ساعت چار صبح که کنی یازده دوازده یک دو سه چار ششت سات بر یک جوان خواب کافیست وقتی که سرکه چهار صبح بخیست. چهار صبح کی خیستی اوزو خاندی بخان. نخاندی سنت صبح تا بخان. بعد 1 یک دو سی دقیقه یک تلاوت قرآن کردی بکن. بازی برو در مسجد جماعت تا اینال وقتی که تو پانزکم پنج در مسجد جماعت میخانی. پنج بجه پس میده و طاقت. یا کتاب تا میگیری. از پنج تا هفت تا هفتونیم که تو درس بخانی، مغز تو آرام نرمال میباشه. کاملا تو وقت می داشته باشی، فرصت میه. صاب تو آرام است وقتی است که سگ ها هم خوستن سکس فتا هم خو خب کردند. چون اردو از ها، تادو و جش و قطتم یا در معصیت خداوند مصروف هستن. دو بجا که خواب کردن اشت بجا نو بجا از خواهو میخویزند تو وقتی که صحبکی بخیزی وقتی که تو دوازده میری تا دوازده درس نیم درست میخونی. اول خود تمام روز وقتی که ذهن انسان که مثل یک کسیت تایب صفحه پاک صفحه وقتی که توی کسیت تایب بتسعی نیمش خاندن های اندیست کسیت پرشد از خاندنهای ایندی، دی سر دیگه از خاندنهای دیگه نیمه از خنده سالات نیمه از لفته سالات این کسیت ما کمرش از دقیقی پرشده در کجای شال این فایل تو کلش پر است، آله هی جایی نداره هرقدر کت میکنی از کتاب پیست میکنید در مغزت نه پیست تو کس میکنی پس, پس میکنی مغزت میکنی نو, نو. باز میکنی ریترای باز ریترای باز نمیشن مجبور استی چه خانده میری باز میری اواج چای میخونی باز نه نه تو نکو. مسلمان وارده بجا که استراحت کردی وقتی که صبحکی پنج وجع بهخیزی مغزت پاک صفا آرام است اول ارتباطه با خدای از زواجان مستحکم سوختی شیطان ها از پیش طرف شیطانای انس و جنیکولش خواستان اول دیگه وقت هستی قرار اونم کتاب تا همین هر خطی کتاب بخونیم مغزت پیس پیس پیس پیس در دماغت کلش جای جای میشه فایلای دماغت کلش از فایلای کتابت پر شد، از این خاطر نورمال درس میخونی اینا گفت اینی قسم بخش اسلامی جون تو مطابق سنت رسول الله زندگیت عیار بساز بی بی که اول انا تا وقت انسان اول نمران نمیشه در پوانتون تا که تقسیم اوقات منظم بر در سایه خدا داشته باشه و تا وقتی اول نمران نمیشه در روز قیامت اما من اوتیه کتاب او بی کسی که بر جاده شوه کتاب اعمالش بعد راست تا او وقت نمیتونی بعد راست تابلنامه ت بگیری تا وقتی که در روز قیامت هم اول نمرانشی و چه وقت اول نمران میشه که برای زندگی 80 سال تقسیم اوقات منظم داشته باشی و تقسیم اوقاتت از قرآن و سنت گرفته شه. نه تقسیم اوقاتی که های انسانی و جنی برد بتن و وقت ترا ناپاک زایی کنن هندوس تا و خدای ناراض که تو مانده و ذله باشی و باز خدا هم ناراض باشه چون خدا گفته که پیغمبر گفته که خدای عزوجل قرآن نازل کرده قرآن گفته که ان کنتم حبون الله فابقوا تتبعون برشان بو که پیروی از پیغمبر بکنن پس قرآن سنت اساس زندگیت قرار بده مطابق ازو او تقسیم اوقات زندگی تا بساز مسلمان متمدن هستی که میدونی ساج حدت دنیا و آخرت نصیب کنیم چارمیش ارزش ها و اولویت ها روش ناخته متابقه آن برنامه ریزی بکنیم ما و شما در ارزش ها به این وقتی که سنجش بکنیم 99 نام خدا هست اگر هر مسلمان بگوی بخی دو دقیقه پند خدباره نام جببار خداوند گپ بزن شاید کفر بگوید اگر بگوید باری ستار گپ بزن من نمیفهمم در باری گپ بزنن گپ زدن نمیتونن. در باری نزات رحمان گپ بزندن قبل نمیتونن اما دربارری انصال ها بود که یک شخصیت 200صد بر گپ میزنن. دوبار فلانی 200 دو دباری فلانی 400 دباری فلانی ۴۶ دوباری زی گپ میزنن اما ما هیچ برنامه نداشتیم که نام های خدای از دوجه و برنامه بگیریم و بشناسیم. چون خدا رو نمی ارزش اساسی در زندگی یک مسلمان چی داره خدای عزوجل داره که باید اول خدای عزوجل بشناسید که ذات رحمان الله ذات رحمان کیست ذات رحیم کیست بلند بگویم ذات غفور کیست ذات مهیمن کیست ذات مقتدر کیست وقتی که الله را شناختی و درباره هر نام خداون عقل تا که 5 5 دقیقه در دقیقه معلومات داشته باشی دوباره از فکر کنی وقتی که قلبت با خدا ارتباط برقرار باز از من دون الله قلب دور میشد و صد جای قران بگه که از من دون الله قلبتان دور کنه و مسلمان ها الله را در قلبت جای بدید دانستن ارزش ها چه ارزش داره برای من عقیدا چی ارزش داره برای من خداشناسی چی ارزش داره بر من زندگی سعادت من چی ارزش داره برای من آخرت سعادت من من اهداف خدا از کجا پیدا کردم ایتانم آیا ایتانم وقتی که در مقابل تلویزیون بشینم و زبانک و قولک بزنم نمیتونی، نمیتونی خودم روشن فکر فکر میگونی لیکن روشن فکرای افغانستان که تاریخ تاریک فکر در دنیا نیست هر کسی که خدا بگه من روشن فکر هستم روشن فکر وطن فروش روشن فکر که بر روس میفروشن روشن فکر به امریکایی میفروشن این چه روشن فکری شد روشن فکر است که پینجه سال با تاریخ تبه و اولاده و نوازهای ترت لعنت بگویم؟ خورشال فکری نیست، خود تاریک فکریست ارزش او خدا باید بشناسی که نسبت به جان ما وطن ما ارزش زیاد داره. او کسی که به خاطر وطن خود خدا قربان کرد، خدا بندی کرد، خدا در پلیشرخی بود، خدا به خاطر وطن خود شهید ساخت او که به خاطر ایلایه کلمت الله خدا شهید ساخت اونون نفر است که ارزش و ارزش خود، ارزش زندگی رو دانسته. اما نمیشه که هر به خیز بره اولا مسأب ارزش رو آیا روشن فکری در غلامی است؟ روشن فکری در وطن فروشی است؟ روشن فکری در بیدینی و جهالت و کفر است؟ روشن فکری در بی است که خانم و دختر و اولاد خود خدا در عرضی دیگرهاد بتیم در مقابل کمره ها و نار و یه خناب و قرآشان رو باز کن روشن فکری است؟ لعنت با تو روشن فکری که ما فکر میکنیم ما مردم ضعیف، ما مردم بی ایمان. پنجم علامت است وسیدن و آسائل رسیدن به هدف تشخیص کن. یک انسان مسلمان متمدن یک انسان مسلمان متمدن کی هست انسان مسلمان متمدن کی هست انسان مسلمان متمدن, انسان مسلمان متمدن که, با... که پیروه مکتب نبوید بودن اونا میفامیدن که ما مثل داکترهایی بودن که مرض تشخیص میکردن دوای مرزا میفامیدن تداوی از او را می و قایی از او از این خاطر در دنیا زندگی میکردن مثل قرآنهای متحرک بودن ما رسیدن هدفم باید واسائل تشخیص کنم کدام وسایل میتونم مرا به خدای عزوجل برسانم کدام وسایل میتونم مرا در جمله مقربین بارگاه خدای عزوجل بسازم مرا در جمله نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین برسانم چی میتونم کدام وسایل وسایلی که میتونه مرا در جمله مقربین برسانه در جمله کسایی که شهدا هستن صالحین هستن انبیا هستن ها یا ایتها النفس نه. ارجعی الى ربی که راضیتا مرضیه فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی قلب خدا با ارتباط دادن به خدای عزوجل بزرگترین وسیله که انسان به هدف میرسانه که انسان از ارتباط قوی ارتباط داشتن قوی با خدای عزوجل نفس خودن نفس مطمئن نبسازن و باز روز آخرت برد گفته میشه که یا تو هن نفس مطمئن نه ای انسانی که تو دارای نفس مطمئن استی ارجع که برو به طرف پروردگارت راضیه که تو از خدا راضی باشی یعنی تو راضی هستی از احکام خداوند مرویتا و خدای عزوجل تو را راضی ساخت فد خلیف فی عبادی داخل شو در بنده های من کی هست بنده های خداوند نبیین صدیقین و شهدا و صالحین از فد خلیف عبادی و ادخل جنتی برو در صف نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین داخل شو و ادخل باز برو در امرای و صدیقین شادا داخل جنت شو اینی سعادت هست اینی خوشبختی هست که ندا از خدای عزوجل و باشه و نفس تو راضیتا مرضیه باشه از احکام خدا راضی هستی سر احکام خدا انتقاد نمی کنی احکام ونده با بسیار خوبی ربنا لا یکالیف الله نفسا لله اه اه اه و صاحبها مکثبت و علیها مکثبت بازمیگه اینا سمعنا و اطاعنا غفران ک ربنا و ایکالمسی سمعنا و اطاع شلیدم و اطاعت کدم شاگردای مکتب نبوت فلسفه نمیگفتم وقتی, وقتی که باشند گفتم میشد که میگه وقتی که بخش حبیب واراک میمید شراب وارد کرده بود دخم مندگی است در سر حیوان در را یک کس آمد که السلام علیکم و علیکم السلام من در تا خمر شراب آوردم. چی میکنین؟ تجارت شراب میکنم تا روز تجارت شراب حرام نشده گف خبر نداری؟ از چی؟ قفوا ايها الشريف نازل ذلك اعوذ بالله من الشيطان وجب بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رجس سر از کوس برکد بی رجس است من عمل شیطان فاجتنبوه از شراب اجتناب بکنید لعلكم تفلحون فلاح ما از شراب اجتناب به صحابی مبارک فورا سنگارو شب گرفت دم ذات امی خم شرابو تکت تکت میده میده کرد اون افرایو صحابی صحابی او, او برادر از امی خومایش استفاده میشه جو. شراب جوس برد گفت نه نه, نه. منم میخوام که یک ثانیه در حکم خدا تاخیر بیه یک ثانیه اگه من توی خمارو تا خانه خود ببرم رو چپا کنم بازی خماش نگاه کنم از این نمیجم تا خانه میرسه به حکم خدا ان تطبیق شه من حت پیر از امی خودم شام زد میده میده کرد زنای انصار حدیث شریف میگه که وقتی که آیات حجاب نازل شد میگه ما دیدیم در بیرون زنها بر آمدن چادرها را پوشیدن و روی خود بسته کردن میگه مثل زی فکر میکردی که در منطقه را یک تک زاغها گرفتن آیات حجاب نازل شد فورا سر خود تدبیر کرد. ازی خاطر مسلمان حقیقی که نفس مطمئن نداره او وسایل رسیدن به هدف تشخیص میگنه که چی مرمیتانه که به خدای عزواجل برسانه قرآن گر همی خواهی مسلمان زیستن نیست؟ جزب. نیست ممکن جز و قرآن زیستن بگه بایدگران بازی نخون پیغمبر خدا گفت اینی راه هست راه مستقیم خط کشید و در اطرافش خطکای خرد خرده دیگه کشید گفت اینی راه مستقیم است که راه خدا و راه رسول خدا هست اگه از این آدمی هر راه دیگه داخل شد در سر هر راه یک شیطان ششته. گمرایت میکنه برام های مختلف، برام سوسیالیسم، برام کاموژیسم، برام نژادیسم، برام فاشیسم، برام قومپرستی، برام جوکراسی، برام فلانی فلانی، شیطانات را از خط مستقیم می‌کشه. این خاطر انسان باید وسایل رسیدن به هدف بفهمه و اگر متناسب کی این وسایل درک بکنیم مسلمانای حقیقی هستیم خداوند متعال جل جل, جل و شما را توفیق نسبت بکنند که در جمله ای به دهای باشه که خدا از از ما راضی باشه و ما رو خداوند متعال جل جل, جل در جمله ای انسان رای هدف من بگردد. سبحانه رب بکره بلعزتی همه یسفون و السلامون علی المرسلین و, و رب العالمین یک درود بلند بفرستین بالای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم اینک حمید و مجید خدایا آخرین کلمات که از زبان ما خارج میشن در آخرین لحظات که لحظات است ای کلمات کلمه لا اله الا الله محمد رسول رسول الله صلى الله